در خانه پسرک قفل نبود. پیرمرد بازش کرد و آرام با پای برهنهش به درون رفت. پسرک در اتاق جلویی روی ننو خوابیده بود و پیرمرد در پرتوب نور کمسوی ماه خوب میتوانست صورتش را تماشا کند. یک پای پسرک را آرام گرفت و آنقدر نگه داشت تا پسرک بیدار شد و غلت زد و به او نگاه کرد. پیرمرد با سر اشاره کرد و پسرک شلوارش را رو از روی سندلی کنار رو بستر برداشت روی بستر نشست و پوشید پیرمرد از در بیرون رفت و پسرک به دنبالش روان شد سخت خوابآلود بود پیرمرد دستش را دور شانهاش گذاشت و گفت مازرد میخوام حرفشم نزن مرد باید اینجوری باشه به سوی کلبه پیرمرد راه افتادند در طول راه و در تاریکی مردان پا را می که دکل قایقهایشان را با خود می بردند به کلبه که رسیدند پسرک گلوله های تناب را که در زنبیر بود و چنگک و غلاب را برداشت و پیرمرد دکل را که بادبان به دورش پیچیده بود روی شانهش گذاشت پسرک پرسید قهوه می اول از بابا رو میذاریم توی قایق؟ بعدش فکر قهوه می کنیم. را در قوطی خالی شیر قلیز، در قهوه خانه که صبح های زود برای ماهیگیران باز بود، خوردند. به سرک فرسید، ای شب چطور خواه بدی، پیره حالا دیگر داشت بیدار میشد هرچند که هنوز دست کشیدن خواب سختش بود. پیرمرد گفت، خیلی خوب خوابیدم مانولین. امروز به خودم خیلی امیدوارم. پسرک گفت. منم همینطور. الان میرم ساردینای تو و خودم و تومای تازه تو رو میارم. پس بابایی ما رو اون خودش تنائی میاره. هیچ خوشش نمیاد کسی به چیزاش دست بزنه. ما با اون فرق داریم. از وقتی که پنج سالت بود، اس بابا رو میدونم دست خودت. میدونم. الان برمیگردم تمام برگردم یه قهوه دیگه بخور. ما اینجا حساب داریم. پسرک سرک برهنه روی سخراهای مرجانی به سوی سرد خانه که تومه ها را در آنجا گذاشته بود راه افتاد. پیرمرد مرد قهوهش را آرام میخورد. این تمام غذای آن روزش بود و میدونست که باید آن را بخورد. مدتها بود که از خوردن خسته شده بود و تنهایی نهار نمیبرد. جلوی قایقش یک بطری آب داشت و این همه چیزی بود که در تمام روز لازم داشت حالا دیگر پسرک برگشته بود و ساردین ها و دو تعمه را که لای روزنامه پیچیده بود آورده بود با هم کوره راه را گرفتند و به طرف قایق راه افتادند ماسه های زیب را زیر پاهایشان حس می کردند قایق را بلند کردند و توی آب سراندند بخت یارت پیره مرد، پیرمرد پیرمرد گفت بخت‌یارت پیرمرد همچنان که برخلاف جهت فشار لبه های پارو که در آب بود به جلو خم شده بود پاروها را با تناب به میله های پاروگیر بست و پاروزنان در تاریکی لنگرگاه را پشت سر گذاشت چند قایق دیگر هم به دریا آمده بودند و پیرمرد با آنکه آنها را نمیدید. صدای برخورد و فرو رفتن پاروها را در آب می شنید و ما حالا پایین تپه بود. گاه از غایقی صدای حرف می آمد، اما از بیشتر غایقها جز صدای پارو زدن چیزی به گوش نمی رسید. از دهانه بندر که بیرون آمدند، از هم جدا شدند و هر یک به امید یافتن ماهی راه نقطه از اقیانوس را در پیش گرفتند. پیره مرد میدانست که بسیار دور خواهد رفت، بوی خشکی را پشت سر نهاد و به سوی بوی پاکیزه صبحگاهی اقیانوس پارو زد. وقتی از آن گودال ناگهانی اقیانوس میگذشت که ماهیگیران چاه بزرگش می و هزار و سیصد متر عمق می و گردابی داشت که از عبور جریان در جهت مخالف کف سراشیب به پدید آمده بود و محل تجمع انواع ماهیها بود، علفهای درخشان دریایی را میدید. اینجا مرکز میگو ماهی تعمه و گله های سرپایانی بود که در گودترین گودالها ها و شبها روی آب می و خوراک ماهی های سرگردان دریا می شدند در تاریکی آمدن صبح را حس می کرد و ضمن پارو زدن صدای لرزان بیرون پریدن ماهی پرندهی را از آب و خشخش بال و رقش را که در تاریکی دوردست اوج می گرفتفت میشنید. پیرمرد ماهی های پرنده را که در دریا دوستان اصلیش بودند دوست می داشت و دلش برای پرنده ها میسوخت خاصه پرستوهای دریایی که کوچک و ظریف و تیر رنگ بودند و همیشه در پرواز و گشت و گذار و هرگز نمی جنگیدند فکر کرد. از پرنده های دوزد و پرندههای قوی که بگذریم زندگی پرنده ها خیلی از ما سختره. حالا که دریا انقدر بیرحم و سندله چرا باید پرستوهای دریا رو این همه ظریف و کوچیک خلق کنن؟ دریا مهربونه خیلی هم زیباست ولی میتونه ناگهان خیلی بیرحم هم بشه. خب اون وقت این پرنده که اینجا پرواز میکنن و توی آب میرن و شکار میکنن، با اون صداهای های که غمگینشون برای دریا خیلی ذریفن. همیشه پیش خود دریا را لامار میخواند که در زبان اسپانیایی نامی عاشقانه برای دریاست. گاهی آشغان دریا پشت سرش بد هم میگویند، اما همیشه لحنشان توریس که گویی از زنی حرف میزنند. بعضی از ماهیگیران جوانتر که به ته تنابهایشان گویه های شناور میبستند و از فروش جگر کوسه پول فراوانی به جیب زده بودند و قایق موتوری خریده بودند دریا را علمار که مذکر است مینایدند. و طوری از او حرف می زدند که گویی از حریفشان یا از یک محل یا حتی از دشمنشان حرف میزنند. اما پیرمرد همیشه به دریا چون زنی فکر میکرد که ایثار میکرد و دریغ میداشت و اگر ستمگر ستیزه جو میشد دست خودش نبود و تأثیر ماه را بر او چون تأثیر ماه بر زنان میدانست پیرمرد یک سره پارو میزد اما هیچ زور نمیزد چون سرعت گرفته بود و جز در چند گرداب سرگردان سطح اقیانوس آرام بود یک سووم کار را به جریان آب واگذاشته بود و هوا که داشت روشن میشد دید که بیش از انتظارش راه پیموده است فکر کرد یه هفته با چاهای دریایی دست و پنجه نرم کردم و هیچ کاری پیش نبردم امروز میرم به جاهایی که پر از گله های و الباکوره تو شاد از توشون یه چیز درسته سعی به طورم بخوره پیش از آنکه هوا کاملا روشن شود پیرمرد طعمه‌هایش را در آب انداخته بود و قایق را به دست جریان سپرده بود یکی از طعمه‌ها 72 متر پایین رفته بود دومی 135 متر و سومی و چهارمی تا 180 و 225 متر در عمق آبی آب پایین رفته بودند طعمه‌ها سرازیر آویزان بودند و میله گلاب توی تعمه ماهی ها فرو رفته بود و محکم شده بود و تمامی نوک و خمیدگی سوزن گلاب را ساردین تازه پوشانده بود. سوزن قلاب از یک چشم ساردین ها فرو رفته بود و از چشم دیگرشان در آمده بود. طوری که روی نک سوزن فولادین تاج از گل درست شده بود. هیچ جای گلاب نبود که برای یک ماهی بزرگ خوشبو و خوشمزه نباشد. پسرک به او دو ماهی تن کوچک یا آلباکور داده بود که شاغولوار از دو تنابی که پایینتر از بقیه بود آویخته بود و از دو تای دیگر یک ماهی دروغین آبی و یک اردک ماهی زرد آویزان بود که قبلا هم از آنها استفاده کرده بود اما هنوز روبراه بودند و بو و منظره خوش ساردین های تر و تازه را به خود گرفته بودند نخهای ماهیگیری به زخامت مداد بودند و به سر چوب ماهیگیری سبزرنگی حلقه شده بودند و کوچکترین تماس یا ضربهی که به تعمه وارد می‌آمد، چوب را توی آب می کشید. و هر یک از نخها به دو گلوله تناب هفتاد متری وصل بود که در موقع لزوم میشد فوراً از بقیه گلوله های تناب کمک گرفت و در نتیجه میشد برای یک ماهی تا 600 متر تناب داد. بعد پیرمرد دید که سه چوب ماهیگیریش که کنار قایق بودند پایین رفتند. آرام پاروزد تا نخها به حالت قائم و بالا و پایین سر جایشان قرار بگیرند. حالا دیگر هوا کاملا روشن بود و هر آن بود که خورشید بدمد. هلال باریک خورشید از دریا بالا آمد و پیرمرد توانست نزدیک ساحل قایق‌های دیگر را ببیند که روی آب چک شده بودند بعد خورشید روشنتر شد و بر سطح آب نور افشاند و وقتی خوب پیدا شد دریای آرام پرتاش را راست به چشمان پیرمرد پاشید که چشمهایش را به شدت زد و پیرمرد دیگر بدون نگاه کردن به خورشید پارو میزد و پایین به درون عمق تیره آب که نخهای قلاب در آن صافی ایستاده بودند مینگریست هیچ کس نمی توانست به آن خوبی نخهای قلاب را در آب قائم نگه دارد و هر تعمه درست همان جایی بود که پیرمرد میخواست. ماهیگیران دیگر هرگز در غم این کار نبودند و تناب‌ها را به امید جریان رها میکردند و گاه میشد که 180 متر تناب داده بودند و قلاب تازه در عمق 100 متری بود پیرمرد با خود فکر کرد اما من گلابا رو با دقت نگه میدارم. فقط عیبه به اینه که دیگه بخت یارم نیست. ولی از کجا معلوم؟ شاید امروز باشه. هر روز واسه خودش یه روز تازه است. البته چه بهتر که بخت با آدم یار باشه. اما من بیشتر دلم میخواد کارم درست و کامل باشه. و باز فکر کرد. اون وقت اگه بخت به سراغ بیاد، اما دگیشو داری. اکنون خورشید دو ساعت بالاتر آمده بود و دیگر نگریستن به مشرق انقدرها زننده نبود. تنها سه قایق دیگر در دیدگاهش بودند که هر سه بسیار دور و کوچک و نزدیک به ساحل بودند. فکر کرد همه عمرم خورشید سحری چشامو زده. البازم خیلی خوب می‌بینم. غروبم می‌تونم راست توی خورشید نگاه کنم و چشم ذره‌ای سیاهی نره. درسته که خورشید غروبم خیلی زننده است اما خورشید سحری واقعاً چشمو درد میاره. درست هموندم یک شاهین دریایی را دید که در آسمان پیش روی قایق با بالهای بلند سیاهش چرخ میخورد پرنده ناگهان فرود آمد و روی بالهای به عقب کشیدهش کج شد و بعد دوباره در هوا چرخ زد پیرمرد با صدای بلند گفت بیخود نگاه میکنه حتما یه چیزی پیدا کرده آرام و یک نواخت به آن سو که پرنده چرخ میزد پارو زد شتاب نداشت و قلابهایش مستقیم در اعماق مختلف پایین و بالا ایستاده بودند اما با آنکه کمی جریان را به هم زده بود، هنوز هم داشت درست و دقیق کار میکرد. هرچند که اگر نمیخواست برای ماهیگیری از پرنده استفاده کند، سرعتش از این کمتر بود. پرنده در آسمان بالا رفت و با بالهای بی حرکتش دوباره چرخ زد و ناگهان شیر جرفت. با پیرمرد ماهی پرنده را دید که از آب بیرون جست و از حول جان به نومیدی روی آب شنا کرد پیرمرد بلند گفت دلفین، ای دولفین بزرگه پاروهایش رو زمین گذاشت و از زیر تخته جروی قایق نخ کوچکی در آورد که به وزنه و قلابی متوسط متصل بود و یکی از تعمه ساردین ها رو به سرش زد و از کنار قایق رهایش کرد و انتهایش را به حلقهی که در ته قایق بود محکم بست و بعد یک نخ قلاب دیگر را تعمه زد وزیر تخته جلوی قایق گذاشت و باز به پارو زدن و نگاه کردن به پرنده سیاه شاهینبال پرداخت که حالا دیگر خیلی نزدیک به آب پرواز می کرد. همونطور که داشت می پایید، پرنده باز بالهایش را برای شیرجه دیگر کش کرد و وحشیانه و عبس به دنبال ماهی پرنده بال زد. و توانست برآمدگی کوچک وجود دلفین بزرگ را ببیند که سر در پی ماهی رمیده گذاشته بودند. دلفین درست زیر مسیری که ماهی پرنده می گریخت، آب را می شکافتند و تا ماهی پرنده در آب می‌افتاد سریع میتاختند. پیرمرد فکر کرد. نگله بزرگ دلفین، اونا همه هستن و ماهی پرنده شانسشون خیلی کمه. پرنده هم شانس نداره ماهی پرنده ها براش خیلی بزرگ و خیلی تند ماهی پرنده را دید که در آب گم میشد و پیدا میشد و به حرکات عبث پرنده نگاه میکرد فکر کرد گله دلفینا دیگه از هم دور شدن اوه، خیلی توند و خیلی دور میرند ولی شاید به دلفین سرگردون تنها ورخوردم شاید هم شاهماهی من دوربر اوناست بره شهی من بالاخره بادی جایی باشه. اکنون ابرها بر فراز خشکی چون کوهستان بودند و ساحل تنها خط سبز باریکی بود که پشتش تپه های آبی مایل به خاکستری قرار داشت. آب دیگر به رنگ آبی سیر بود. آن که از نهایت سیری به بنفش میزد به درون آب که نگاه میکرد ذرات شناور سرخفام و جانوران ریز دریایی و پرتو غریبی را که خورشید در غلزت آب به وجود آورده بود میدید نخوایش را وارسی کرد و دید که مستقیم در آب فرو رفتند و از نظر گم شدند و از دیدن این همه ذرات شناور شاد و سرخوش بود، چه؟ از وجود ماهی خبر میدادند. حالا که خورشید بالا رفته بود، و قریبش در آب مشته هوای خوش می داد و این را می شد از شکل عبرهای فراز ساحل نیز دریافت. پرنده دیگر از نظر دور شده بود و جز چند که خزه دریایی و سارگاسوی زرد آفتاب خورده و رنگ باخته، و تنه آماسیده ژلاتینی و ارغوانی و شکیل و رنگارنگ یک ناوماهی پرتقالی که کنار قایق شناور بود چیزی بر سطح اقیانوس دیگر نمیشد. ناوماهی به پهلو برگشت و بعد به حال عادی درآمد. روح همچون حباب بر اقیانوس شناور بود. و دنباله های ارغوانی بلند مرگبارش بارش تا سانتی سانتیمتر از پشت سرش در آب کشیده می شد. پیرمرد گفت، اگو آمالا! از همونجا که سبک بر پاروهایش تاب می به درون آب نگریست. و ماهی های ریز را دید که همرنگ دنباله ها بودند، و میان دنباله ها و زیر سایه های کوچک حباب هایی که بر اثر حرکت آگوآمالا به وجود می‌آمدند، شنا می‌کردند. این ماهی‌ها به زهر آگوآمالا مسونیت داشتند. اما انسان چنین نبود. به موقع ماهیگیری اگر رشته‌های چسبناک و ارغوانیش به نخ ماهیگیری می‌چسبید، دست و بازوان پیرمرد را پر از تاولها و زخمهایی چون اثر تماس با گزنه میکرد. اما تاثیر سم آگوآمالا سریع و چون زربه شلاق گزنده بود. بدن بادکنکی ناوماهی با آن رنگهای رنگین کمانیش زیبا بود. اما فریب کارترین پدیده اقیانوس بود و پیرمرد دوست داشت تماشا کند که چگونه تعمه لاک بزرگ اقیانوس می شود. لاک بادکنکها را که می‌دیدند از روبرون از دیکشان و چشمهاشان را می و کاملا در لاکشان فرو می رفتند و آنها را با بادکنک و رشده ها و همه چیزهای دیگرشان می پیرمرد دوست داشت این کار لاک را تماشا کند و دوست داشت پس از طوفان در ساحل بر پشتشان راه برود و صدای تپ تپ پاشنه بسته پای خود را بر برانها بشنود پیرمرد پشت های سبز رنگ و لاک پشت گوشت خار دریایی را با آن وقار و سرعت و با آن ارزش و گرانیشان دوست داشت و به این جانوران درشت کلدن کلخر با آن زره زرد رنگشان و آن عشق بازی قریبشان که سرخوش چشم بسته نوماهی های پرتغالی را میخوردند تحقیلی دوستان روامی داشت. سالها به شکار لاکپشت رفته بود و هیچ رمز و رازی از آنان برو پوشیده نبود، اما دلش برایشان میسوخت، حتی برای آن درشت اندام ترینشان که به درازی یک قایق و به وزن یک تن بودند. بیشتر مردم با لاک پشت سنگ دلند چون قلب لاک پشت ساعتها پس از آنکه شکمشان پاره و سلاحی می شود میتبد. اما پیرمرد فکر کرد قلب منم مثل اوناست و دست و پامم شبیه اوناست. پیر مرد تخمانها رو میخورد تا قوت بگیرد. تمام ماه انها می تخمانها رو میخورد تا در سپتامبر اکتبر برای گرفتن شاه ماهی های واقعی قوی باشد. پیرمرد هر روز از خمره بزرگی که در کلبه‌ای بود که خیلی از ماهیگیران وسایلشان را آنجا گذاشته بودند یک فنجان روغن جگر کوسه ماهی هم می‌نوشید. همه ماهیگیران آزاد بودند که هر وقت بخواهند از خمره پیرمرد روغن ماهی بنوشند. بیشتر ماهیگیران از مزه روغن ماهی بدشان می‌آمد. اما مزه روغن ماهی از بیدار شدن در صبح زود بدتر نبود. به علاوه برای انواع سرماخوردگی، زکام و برای سوی چشم خوب بود.